ها. به خیابان لبنورس که رسیدم و یک نصف بلوک دیگر را هم پشت سر گذاشتم تا به آن آپارتمان ساب مرده برسم، یک جورهای احساس پیروزی میکردم. برای یک بار هم که شده به فکر بابل نیفتاده بودم. ماشین نشکش جلوی مجتمع پارک کرده بود. یک نفر تو مجتمع مرده بود. سعی کردم حدس بزنم کدام یک از مستجرها مرده اما نمی توانستم تصور کنم کسی در این محل مرده باشد. اجاره نشین شدن در همچه جایی خودش نوعی مردن بود. مرگ دیگر برای چه؟ قطعا وقتی می فهمیدم چه کسی مرده حسابی جا میخوردم. ماشین نشکش یک کامیونت ماک بود که بدنش را عوض کرده بودند و جای کافی برای پذیرایی از چهار مال یاد دهنده تازه متوفا داشت. ها روی پله ها گذاشتم و در ورودی را باز کردم و وارد سالن تاریک و بوی ناگرفتته ساختمانی شدم که بعضی ها بهش می گفتن خانه اما من می گفتم گو با آنکه قضیهی کرایه را با خانم صاحب خانه فعلا حل و فصل کرده بودم باز هم اختیار نگاه هم به پلکان طبقه دوم و آپارتمان او افتاد. در آپارتمان باز بود و دو نشکشش داشتن جسدش را بیرون میآوردند روی بران دراز راست کشیده بود. و ملافهی روش کشیده بودند بعضی از مستجرها دور در را گرفته بودند رفتارشان مثل ازاداران آماتور و تازه کار بود من ته پاگرد ایستاده بودم و نعشکش را تماشا می‌کردم که جسدش را از پله پایین می‌آوردند. خیلی راحت و روان تقریبا بدون هیچ زحمتی هو روغن زیتونی که از شیشه بریزد بیرون از پله که می پایین کاملا ساکت بودند من با خیلی از آدم هایی که توی پزشکی قانونی کار می آشنا بودم اما این دوتارا نمی شناختم مستجرهای ازادار تنگ هم بالاهای پله ها جمع شده بودند و پچ پچ به شکل آماتوری زاری و مثلا ازاداری می کردند اصلا استعدادی از خودشان نشان نمیدادند. البته چطور می برای صاحب که یک سلیته قرشمال و یک فضول باشی بزرگ بود درست و حسابی ازاداری کرد خانم صاحب خانه این عادت بد را داشت که از شکاف در آپارتمانش دزدکی دید میزد و هر رفت و آمدی به ساختمان را به دقت زیر نظر میگرفت. گرفت. موهه باورنکردنی باور نکردنی بود. بگمانم یک جایی از نصبش به خفاش ها می رسید. خب آن روزها برای این خانم دیگر سپری شده بود. حالا راهی سفری به مقصد دوست پاچوبی من میشد تا کمی بعد با یخ از او پذیرایی کند. نمیدانستم با تن لخت او هم اصلا چشم چرانی می کند یا نه نه فکر نمی کنم این کار را بکند زیادی پیر بود زیادی هم دونات مانده خورده بود انگشگوچی که یان فاحشه که حالا هم نشین پارچوبی بود هم نمیشد همان که با یک نامه بازکن دخلش را آورده بودند برای چند لحظه جسد زنک را توی ذهنم تصویر کردم واقعا که دلبری بود بعدش به بلند زیبایی فکر کردم. که وقتی وارد پزشکی قانونی می شدم به او برخوردم همان که وقتی دیدمش آهان نال سر داده بود اما جسد آن فاهشه مرده را که دیده بود در مقابل پاچوبی خیلی خون سرد و بی تفاوت نشان داده بود در ادامه این افکار یک و یاد راننده ی افتادم که وقتی زنک را سوار کرد و راه افتاد لبخندی به من زد انگار که مرا را می شنخت انگار رفقای قدیمی بودیم که حالا وقت حرف زدن با هم را نداشتیم. اما به زودی هم دیگر را دوباره می دیدیم. ذهنم را دوباره متوجه وضعیت موجود کردم. نشکش ها را می دیدم که داشتند کار از پله پایین آوردن جسد خانم صاحب خانه را به پایان می بردند. مطمئن در این کار مهارت داشتند. البته این شغلشان بود اما نحوه انجام وزیفهشان برای من تقسیم بود. به نظر من هر کاری هنری دارد و آنها در حال اثبات نظریه من بودند لاشه آن اجوزه را طوری هم می که انگار یک فرشته یا دست کم یک میلیونه رست از پله ها که کاملا آمدن پایین گفتم خانم صاحبخانه؟ خانه؟ این را طوری گفتم که یک کارگاه خصوصی می گوید. از حفظ ظاهر خوشم میآید یکیشان گفت امه. گفتم قضیه چی بود؟ آن یکی دیگر گفت قلبش. بساتاران آماتور هم از پله‌ها آمدند پایین. ها را تماشا می‌کردند که کار انتقال جسد به بیرون ساختمان را به اتمام می‌رساندند. جسدش را پشت ماشین نشکش سر دادند. یک جسد دیگر هم همانجا بود. پس خانم صاحبخانه در راه سفر به پزشکی قانونی تا پایین شهر هم سفری هم داشت. به نظرم تنهایی حوصله آدم سر می رود. نشکش ها در را پشت سر او و دوست نویافتش بستند آهسته راه افتادند رفتن روی صندلی جلو نشستند. رفتارشان خیلی خودمانی و بی بود همان نگاهی را به نهش داشتند که شیرفروش به شیشه خالی دارند فقط باید برشان داری و ببریشان روز من خانم صاحبخانے که راهی شد از راه رو رد شدم تا به آپارتمان خودم بروم ناگهان جنبی مثبت ماجر او توجهم را جلب کرد پیرزن صاحبخانه مالک ساختمان بود بیوه بود و هیچ قوم و خیش و هیچ دوستی هم نداشت واس اموالکاش به کل پا در هوا بود ماها طول میکشید تا اوزار و سر و سامان بدهند و بنابراین هیچ کس به خاطر اجاری مفقه اسباب دردسرم سرم نمیشد اچپ فرصتی امروز واقعا روز من بود. از دو سال پیش که ماشین زیرم گرفت و جف پاهام را شکست همچون روزی به زندگی ندیده بودم. بابت رضایت دادن پول خوبی گیرم آمد سه ماه به تخت بند بودم اما از کار کردن برای امرار هم معاف بودم و راستی که چه دورانی داشتم در رویای بابل بودن در آن بیمارستان. به فهمی نفهمی از ترخیص از بیمارستان بیزار بودم. گمانم این بیزاری را بروز هم داده بودم. پرستارها موضوع را مایه خنده و شوخی کرده بودند. یکی میگفت: چرا ماتم گرفتی؟ یکی دیگر میگفت: انگار میخوای بری مراسم خاکسپاری؟ حالیشان نبود که بیمارستان برای من چه جای راحتی بوده. فقط راست میکشیدم و همه ی خورد فرمایشات هم را انجام میدادند و عملا کاری نداشتم جز اینکه در رویای بابل سیر کنم. از همان لحظه که با چوب زیر بغل پام را از در بیمارستان گذاشتم بیرون بار دیگر افتادم در سرازیری از آن لحظه تا به امروز همینطور در حال سخوتم و امروز عجب روزی بود یک مشتری تیر برای تپانچه پنج دلار و بهتر از همه یک صاحبخانه مرده دیگر چه میخواستم از وقتی رفته بودم بیرون، آپارتمان پر کسافت نمورم هیچ تغییری نکرده بود و چه افتضاحی یا عیسی مسیح چطور میتوانستم اینجوری زندگی کنم به فهمی نفهمی ترسناک بود از روی خرتوپرت های مچهول الحوویه یک اتاق رد شدم اهم داشتم به آنها توجه نکنم اصلا نمیخواستم بدانم چه هستند و چه نیستند از نگاه کردن به تخت خوابم هم تفره میرفتم. تخت خوابم انگاری از اساس بخش مرقبت های ویژه تیمارستان بود. من واقعا هیچ وقت آدمی نبودم که خیلی اهل مرتب کردن تخت خوابم باشم. حتی خیلی وقت پیش ها انگیزه برای انجام این کار داشتم. مادرم همیشه سرم داد میکشید که چرا تخت تو مرتب نمی‌کنی؟ همه کارو من باید برات بکنم. بعد از اینکه تختم رو مرتب می‌کردم داد می‌زد تو چرا نمیتونی تختتو درست مرتب کنی؟ ملافه ها رو ببین مثل تناب دار شدن نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزم رحم کن خدا جون، رحم کن به من و حالا من هیستد دلار به او بدهکار بودم و تخت خوابم هم مثل چوبه های داری بود که قاتلان ابرام لینکون را به آن آویزان کردند و این هفته هنوز به مادرم زنگ نزده بودم باید همم میکردم تا به توانم مشتریم را تحت تأثیر قرار بدهم. برای همین لباسام هم رو کندم و داشتم شیر دوش را باز می کردم که یادم افتاد اصلا صابون ندارم. دخل آخرین خورده صابون را هم چند روز پیش آورده بودم. تازه ریش تراش هم تیغش آنقدر کند بود که به درد گلابی پوست کندن هم نمیخورد فکر کردم لباسام را دوباره تنم کنم بروم بیرون، صابون و تیغ ریش تراشی بخرم. اما بعد یادم آمد که تا یک فرسخی خانه دیگر هیچ مغازه‌ای نمانده که من بدهکارش نباشم. آن اسکناس پنج دلاری را جلوی چشم هر مغازه داری میگرمجروااجرم میداد. اصلا ندا چکار باید می از در و اصلاً هم اصلا نمیتوانستم یک ساون یا یک دانه تیغ قرض کنم. چون از شیر مرغ تا جان آدمیزاد دیگر چیزی نمانده بود که من از آنها قرض نکرده باشم. گلوم هم که میبرید یک چسب زخم هم بهم قرض نمیدادند. اوزار را دوباره و با دقت تمام مرور کردم. روال افکارم به این ترتیب پیش رفت آب از صابون مهمتر است یعنی که صابون بدون آب چیست؟ هیچ. صابون با آب است که معنا پیدا می کند پس منطقاً آب می تواند به تنهایی اوزار و سر سامان بدهد و به هر حال این بهتر از هیچ چیست؟ میدانید که منظورم چیست؟ خودم را که با این منطق متقاعد کردم شیر آب را باز کردم و رفتم زیر دوش به آنی خودم را عقب کشیدم آه داد میزدم و از درد سوزش بالا پایین می پریدم. آب داغ داغ داغ شده بود و من باید تاوانش را می دادم چی کنم؟ عقلم نرسیده بود دمای آب را طوری تنظیم کنم که برای آدم قابل تحمل باشد خب دیگر اشتباه از خودم بود همین که درد سوزش ساکت شد آب گرم و سرد را طوری تنظیم کردم که در مجموع محیط مقبولی برای حمام کردن بدون صابون فراهم شود من معمولاً توی حمام آواز میخوانم برای همین زیر دوش زدم زیر آواز همیشه در حمام سرودهای کریسمس را می‌خواندم چند سال پیش من وقتا که در یک آپارتمان مجللتر زندگی میکردم، زنی شب را پیش من بود منشی یک دلال ماشین های دست دوم بود. من واقعا ازش خوشم میآمد. امیدوار بودم رابطهمان جدی شود، برکه بتوانم یک ماشین دست دوم را با چند چوب تخفیف بخرم. چند باری با هم قرار گذاشته بودیم و رفته بودیم بیرون. آن روزها روزگاری بود که من صابون داشتم. و ساب که شد رفتم دوش بگیرم. از اتاق که درآمدم، او هنوز توی تخت دراز کشیده بود. رفتم زیر دوش و زدم زیر آواز. در نیم شب روشن شد. آن ترانه باشکوه قدیمی همینطور طور خواندم و خواندم دوش گرفتنم که تمام شد برگشتم به اتاق خواب. او رفته بود بلند شده بود؟ لباس پوشیده بود و بدون هیچ حرفی رفته بود البته یادداشتی روی میز کنار تختم گذاشته بود. یادداشتش این بود. آقای کارده عزیز خوش گذشت ممنون لطفا دیگر با من تماس نگیرید. با احترام داتی جانز کانم بعضی ها دوست ندارن ورود کریسمس را در ژوئیه بشنوند شناسی با شهرت جهانی مجلس عیش نظافت شخصی را، با کم اثرترین اصلاح صورت دنیا به پایان بردم و این را مدیون کندی تیزترین تیغ ریش تراشی بودم که داشتم. بعد کپ کپ لباس هام را گشتم و تمیزترین لباس هایی را که در این چند ماه بیپوللی شدید مانده بود سوا کردم و کنار هم گذاشتم و دقت کردم که حتما هر دو جورابم را پام کرده باشم البته جورا هم جفت نبودند اما به قدر کافی شبیه هم بودند. بلنگه به لنگه بودنشان را فقط جوراب شناسی با شهرت جهانی می تشخیص بدهد. خدا را شکر، این اوزا به لطف مشتری جدیدم عوض می شد. من از این جهنمی که اسیرش بودم آزاد می کرد. ساعت روی میز کنار تختم را نگاه کردم. چهرش از میان آن همه خرت و پرت و آشفته پیدا نبود. خیلی خوشحال به نظر نمی رسید. فکر کنم ترجیح میداد در خانه یک بانکدار یا یک خانم معلم ترشیده باشد تا پیش یک کارگاه خصوصی سانفرانسیسکویی که ستاری اقبالش افول کرده. اقربه های ساعت دل سردم پنج و پانزده دقیقه را نشان می داد. چهل و پنج دقیقه تا ملاقات با مشتریم جلوی ایستگاه رادیو در خیابان پاول وقت داشتم. امیدوار بودم هر کاری که مشتریم میخواهد براش بکنم در ایستگاه رادیو باشد. چون من هیچ وقت هم به یک رادیو باز نشده بود. در حالی که رادیو گوش کردن را دوست داشتم و یک عالم برنامه رادیوی دلخواه داشتم خب حالا دوش گرفته اصلاح کرده تمیز و لباس پوشیده بودم وقتش بود که راهی مرکز شهر شوم فکر کردم راه را پیاده بروم چون به پیاده روی عادت داشتم گو این که دوران پیاده روی ها دیگر سر آمده بود پول و مشتریم به این روی خاتمه می داد. و این پیاده روی تا مرکز شهر یک جورهایی ودا با پیاده رفتن به هر جایی بود. کتم را برداشتم، توی هرجیبش یک اسلحه داشتم، یکی پر و یکی خالی. حالا که به گذشته نگاه میکنم میگویم کاش آن هفتیر خالی را با خودم نبرده بودم اما نمیشود به عقب برگشت و گذشته را از نو ساخت. فقط میشود با آن کنار آمد. قبل از اینکه از آپارتمانم بیرون بزنم، دوروبر را نگاه کردم ببینم چیزی را فراموش نکرده باشم. البته فراموش نکرده بودم. منی که از مال این دنیا چیز آنچنانی نداشتم چه کوفتی را ممکن بود جا بگذارم؟ ساعت ماچی نه. نقش نقشدار با یک الماسه گنده؟ نه. پای خرگوش بخت؟ نه. مدت ها قبلون بانده بودمش. با دو اسلحه در جیب آنجا آراسته و پیراسته ایستاده بودم. و بیش از همیشه آماده بودم که بیرون بزنم. تنها چیزی که ذهنم رو آزار میداد این بود که باز هم باید به مادرم تلفن میکردم و همان مکالمات همیشگی را از سر می گرفتم. فهش و نزای آن هفتهام را تحویل گرفتم خب دیگر اگر بنا بود زندگی آدم بیکم و کسری باشد که همان اول همین طوری بناش میکردند و من هم که از باغ عدن حرف نمیزنند. خداحافظ، چه های نفته رودایلند از خانه که بیرون آمدم عزاداران آماتور خانم صاحبخانه بالای پله نبودند حتما هنرپیشه های لوده انتخابی برای یک اپرای افتضاح عزاداری بودند و حالا همه به سوراخموش هاشان برگشته بودند و خانم صاحب خانه هم کلبت مرده بود از خانه که بیرون می آمدم به او فکر میکردم. قطعاً حقه خوبی بود که به او گفتم چاهای اموم در رودایلند به نفت رسیده و بنابراین پول و به هم زده و به این ترتیب برای پرداخت اجاره محلت دیگری گرفتم. فکر بکری بود. بلبداه سرهم کردم و او هم باور کرد. اگر بابل سد راهم نشده بود، حتما سیاستمدار بزرگی بزارگی می شدم. از پلکان جلوی خانه که می آمدم این خانم صاحبخانه را تصور کردم که همان دم که قلبش از کار افتاده، به چاهای نفت رودایلند فکر می, کرده. می توانستم بشنوم که بلند, بلند بلند با خودش می می‌گفت: من کتاب‌ها حال هیچ وقت چیزی از چاه نفت تو رودایلند نشنیدم. یه جورایی با عقل جور در نمیاد میدونم که یه عالم چاه نفت تو اوکلاهاما و تگزاس هست و تو جنوب کالیفرنیا با چشای خودم دیدمش، ولی چاه نفت تو رودایلند؟ بعدش قلبش از کار میافتند بهتر اکس های قشنگ از خیابان و پایین میرفتم حسابی حواسم رو جمع کرده بودم به فکر بابل نیفتم. که یک ها جوانک بیست و دوست سالی که داشت از آن طرف خیابان می انگار مرا شناخته باشد شروع کرد به دستکان دادن. تا دا آن وقت اصلا ندیده بودمش. نمیدانستم کیست. مان نبودم قضیه از چه قرار است. خیلی بیقرار بود که از خیابان رد شود و بیاید سراغ من. اما چرا قرمز بود و ایستاده بود تا سبز شود. اما انطور که ایستاده بود دستهاش را مثل یک آسیاب بادی بیتاب در هوا تکان چراغ که سبز شد از خیابان رد شد و به طرف من دوید. مثل برادری مدتها مفقود گفت: سلام، سلام. صورتش پر از جوش بود و چشمهاش نشان میداد که ضعف بینایی دارد. این خلوچه دیگر که بود؟ گفت: منو یادت میاد؟ یادم نمیامد. و اگر هم یادم میآمد ترجیح میدادم که یادم نیاید. اما همانطوری که به او گفتم یادم نمیامد. گفتم: نه من تو رو یادم نمیاد رخت و لباس افتظاهی داشت ظاهرش به همان بیکلاسی خودم بود وقتی گفتم نمی شناسمش حسابی سرخورده شد انگار که ما رفقای خیلی سمیمی بوده و من او را پاک از یاد بردم این یارو دیگر از کدام گوری پیدا شد حالا مثل طول سگی تازه تعدیب شده چشمهاش را به پاهاش دوخته بود گفتم تو کی هستی؟ با حالتی اندوهگین گفت منو یادت نمیاد. گفتم بگو کی هستی شاید یادم بیاد حالا سرش را معیوسانه تکان میداد گفتم خب بیالا بریز بیرون تو کی هستی اما سرش را تکان میداد راه افتادم بروم دستش را دراز کرد و کتم را چسبید تا نگذارد راه خودم را بروم این شد دلیل دوم برای اینکه کتم را تمیز کنم آهسته گفت تو چند عکس به من فروختی گفتم عکس آره عکسای قشنگی بودن بردمش رو خونه جزیره گنج یادت میاد؟ نمایشگاه جهان من اون عکس ها رو با خودم بردم خونه آه گندش بزنند، خب حتما اکس ها رو با خودش برده خانه گفت چند تا عکس دیگه میخوام اون عکس ها قدیمی شدن تصور میکردم آن عکسها ها حالا چه شکلی به نظر میرسند و مرمورم شد گفت بازم داری بفروشی؟ من عکس جدید لازم دارم. گفتم قضیه مال مدتها قبله. من دیگه این کار نیستم. اون کار مال گذشته ها بود. گفت نه، چهل بود. فقط دو سال ازش میگذره. یه چنتایی هم وسط نمونده. پول خوبی بابتش بهت میدم. حالا با اون چشمهای ملتمس طول سگی به من خیره شده بود. علیل و زلیل عکس عکس‌های سکسی شده بود. قبلا هم اینجور را دیده بودم. اما دوران فروختن عکس های مستحجن برای من دیگر سپری شده بود گفتم بورتو گمکانمرتیکه منحرف و بعدش راهم همرا در خیابان رووننرز به سمت ایستگاه رادیو ادامه دادم کارهای مهمتری داشتم نمی توانستم گوشه خیابان بیستم و با آن منحرف عوضی اختلاط کنم از فکر اینکه آن اکس هایی که من در چهل در نمایشگاه جهان به او فروخته بودم حالا چقدر کنه شده اند دوباره مرمورم شد پدر و پنج هنرمند رمانتیکش چند چهار راه دیگر را هم در خیابان لوونورس به سمت هم با مشتری مربوطه رد کردم و بعد به یاد خوابی افتادم که دیشب دیده بودم خواب دیدم سراشپز مشهوری از اهالی جنوب مرزم و یک رستوران مکزیکی در بابل باز کردم که غذای مخصوصش دلمه فلفل و خوراک پنیر و فلفل بود معروف ترین رستوران بابل شده بود رستورانم هم نزدیک که باغ بود و برجسته ترین بابل آنجا میآدند بخت و نصر هم اغلب آنجا میآد اما علاقه به غذاهای مخصوص نداشت پیراشکی مکزیکی را ترجیح میداد بعضی وقتا با دو پیراشکی توی دو دستش آنجا لم میداد عجب شخصیتی بود همیشه خدا اسباب با خنده و شوخی را مهییا می کرد و با پیراشکی به مردم علامت میداد نه هم آنجا به عنوان رقاص کار می کرد. به سن و گروه کوچکی از نبازندگان دوره هم داشت، پدرو و پنج هنرمند رمانتیکش. می طوفان طوفان بپا کنند و رقص نعنادیرت که شروع می شد همه باز هم آبجو سفارش میدادند تا آتششان را سرد کنند. نعنادیرت یک آتش پاری مکزیکی بود که در بابل باستان می رخزی. اوه، او, او. یک کم شدم حین قدم زدن در خیابان به سمت وعدگاه هم با مشتری مربوطه دوباره دارم به بابل فکر می کنم عجب خبتی آنن قطعش کردم زدم روی ترمز. باید حواسم جمع باشد نمی توانم بگذرم بابل اسیرم کند یک عالم ماجرا در انتظارم است بابل باشد برای بعد بنابراین قالب ذهنم را از نه سامان دادم طوری که بتوانم روی موضوع دیگری تمرکز کنم موضوعی که انتخاب کردم کفش بود. یک جفت کفش نالازم داشتم. کفشی که پا می کردم پاره شده بود. اسمیت اسمیت همانطور که داشتم به کفشان فکر میکردم، یک چار را از ایستگاه رادیو دور شده بودم. و در همان حال، اسم اسمیت اسمیت در ذهنم جرد زد و بی اختیار داد زدم، چه عالی؟ عالم و آدم ممکن بود صدام را شنیده باشند، اما خوشبختانه هیچ کس آن اطراف نبود. راسته خیابان پاول سوت و کور بود. اول و آخر بلوک چند نفری دیده میشدند، اما وسط بلوک خودم تنها بودم. بخت باز هم با من یار بود اسمیت اسمیت فکر کردم این اسم کارگاه خصوصی من در بابل است اسم او اسمیت اسمیت خواهد بود بالاخره به صورت کامل اسم اسمیت دست پیدا کرده بودم اسمیت را با یک اسمیت دیگر ترکیب کرده بودم واقعا به خودم افتخار میکردم. حیف که هیچکس آنجا نبود تا دست آوردم را براش بازگو کنم. البته این را هم می دانستم که اگر از اسمیت اسمیت با کسی حرفی میزدم این خودش دلیل موجهی برای اعزام اجباری به تیمارستان میشد، جایی که من هیچ خوش نداشتم به آنجا عظیمت کنم. اسمیت اسمیت را پیش خودم نگه میداشتم. دوباره به فکر کردن درباره کفش هم برداختم.